اللهم صل على فاطمته و ابيها و بلهها و بنيها و صل المستودع فيه بعدد ما احاط به علمك اللهم صل على محمد و محمد و عجل فرجهم بسم الله الرحمن الرحيم مباحثمون در تب معصومی بحثمون مؤمنا در سرکه طبیعی و میوه سیب و به دست آوردن انواع سرکه از میوه های رسیده و از سبزیجات مفید سپس بیان فواید انواع سرکه ها و سپس ترکیبات یا محلولایی که فواید متعدد داشت که در پیشگیری از بیماری یا درمان بیماری یکی از بیماریهای مبتلا به مردم چیه بیماری های روده معده هست مردم درباره مشکلات روده اطلاعات کمی دارن بیقراری ها و عادات نامناسب غذایی در زندگی امروزی باعث شده که انسان مدام با چنین موضوعی برخورد کند و در ارتباط باشه بحث سوء حازمه بحث بیماری های غیر عضوی دستگاه گوارش مثل تخمه، ترشا، ریفلاکس، سردل، پوده کردن سرسوزه معده یا هارت بام و مانند اینها این از ابتلاعات شایع در داخل و خارج کشور بحث بیماری های غیر عضوی دستگاه گوارش کسانی که عادت بدی دارند به نام پرخوری و کسانی که اضافه وزن دارند و کسانی که غذاهای چرب و چیلیس میخورن و کم تحرک‌اند در هر سه سبب میشه که افزایش کار روده شود و یا غذاهای غیر طبیعی و نوشیدنی‌های غیر طبیعی میخورن مثل اسانس‌های شیمیایی مثل فست ها یا غذاهای صنعتی، از سوسیس و کالباس و همبرگر پیتزا و مرق کنتاکی و مانند او آه. یا قضاهای غیر طبیعی میخورن که مواد مغذیش بسیار کمه شکن پر کنه؟ معده و روده رو درگیر میکنه اما مواد مغذیش کنه آه. حتی کسانی که شیلینیجات غیر طبیعی میخورن مثل شیلینیجات شینیفروشا قنادی ها چه تر چه خوش یا اینکه آرد سفید میخورن نون سفید کیک سفید بیسکویت سفید نون ساندویچ و یا اینکه کسانی که مثلا الکل می‌خواید اینا مصلاتا هر هر سه مورد اینها آسیب جدی به هم معده هم به روده میزنه و مواد مغزیش هم کمه کار روده رو افزایش میده موندگاری فضولات رو در روده و در رکتوم راست روده افزایش میده هم دوچار یبوست حاد و مزمن و تنبلی روده بزرگ میشه هم ارزش قضاییش کمه چون سبوس و شلطک که شده تصالح اکثر ویتامین های بی یک به به دوازن چی شده مامنا حض شده اتوش چون سبوس و شلتوکش حض کردن تصالف فهمونیم هم فایبر گیاهیش خیلی کم شده چون سبوس شلتوک حض شده فیبر گیاهیش هم بسیار کم شده یک معین یک معده به حرکات دودی شکل روده بزرگ چیه فایبره هم فیبر گیاهیه اونم که حض که لذا کار روده رو افزایش میده روده بدن انسان ها به دلیل پیچ و خم فراوان و وجود پرز بسیار زیاد به صورت میکروسکوپی و طول این روده هم هفت الی هشت متر مستعد افونی شدنه به اسطلاح تخصصی گوارش روده افونی بهشت رشته باکتری های مزره. لذا این باکتری های گندیده و فاسد ازدیاد عفونت در دستگاه گوارش رو ایجاد میکنه لذا بروز و ظهور سمهای مخمری در روده و دستگاه گوارش میشه مثل متانول، مثل بوتانول مثل پروپانول و دیگر الکل ها که اینا میتونن به تدریج تمام بدن انسان رو مسموم کنن این روایات اهل بیت اسمت و طهارت از جمله فرمایشات گوهربار رسول مکرم اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم که از شیعه و سنی روایات داریم حضرت فرمودند: المعدتو بیت الداء، بیتو کل دا معده اگر درست غذا یا ریزم و قضی نرسه قضا و ریزم و قضی بهداشتی نباشه نظیف نوافت رعایت نشه یا اینکه شخص پرخوری کنه یا اینکه شخص مندخوری کنه مندخوری که ذریب به بابتریای مزر قارش ها زیاد میشه و درصد فائدش از حیث ویتامین ها چی میشه؟ کم میشه غذای مونده درصد ویتامین هاش کم میشه حتی اگر میوه باشه سبزیجات باشه تو چه برسه به قضای درست شده تهیه شده در مناظر یا غیر منازر بحث رسطوران ها و ساندویچ فروش ها و ماننده اون آنها مونده خوری مد شده ازا طول عامرها کوتاه شده زیرا که زریب مسمومیت داخلی زیاد شده به خاطر انواع الکل ها که اسبردم که اینا به دست آمده از باکتری های در روده و معده خب بدن سریعتر مسموم میشه طول عمر شخص کاهش میدام یکی از چیزهایی که میتونم عمل گوارش رو تنظیم کنه و با عنوان یک ضد سم طبیعی عمل کنه سیب درختی شیرین رسیده یک عدد بعد از غذا مصرف بشه یا بین روز یا عصرونه یک لیوان آب که در او دو قاشق چای خوری سرکه طبیعی سیب باشه یا یک قاشق مراب بخوری این محلول رو جان کنه میتونه معده و رودشو پاکسازی کنه همان گونه که بعدن میشه مؤمن مطالب دیگه یا و استفاده از چیزهای دیگه برای پاکسازی عمل کرد مثلا یکی از چیزهای مهم که علاوه برسی به درختی رسیده شیرین و یا سرکه طبیعی که توضیح دادم یکی از غذاها و ریز های بسیار مفید که مانند و نظیر ندارد اصل طبیعی به دست آمده توسط زنبورهای اصل زنبورهایی که مؤمنا سالم مکانها بهداشتی کندوها بهداشتی افرادی که برداشت اصل می کنند و آیت بهداشت و نظافت فردی جایی که اصل رو صاف میکنن یا کندور رو جا به جا میکنن دماغ مناسب نه خیلی سرد تگری نه خیلی داغ سوزان و مانند اینها گرد خاک نباشه نمک نباشه سرک روش نریزن و مانند اینها اونی که تروایات شیعه هست اگر همه مسائل لاعیت بشم و این اصله به دست آمده از شهده گلهای غیر سمی باشد چون اگر از شهد گلهای سمی باشه مثل اصل بلادر خب اینجا اصل بلادر سمیه شخص مسموم میکنه و از کسرت اسال استفراق منجر به مرگش میشه که در کشور انگلستان سالی چند بار بعضی افراد مرحوم میشن به خاطر خوردن اصل بلادر پس چی میگیم آقا قیداشو؟ از شهد گل‌های رنگارنگ خوشبوی غیر سمی اگر زنبور عسل سالم از چنین شهد‌های فراورده عسل تهیه کنه بحثای برداشتش صحیح باشه توزیعش صحیح باشه نگهداریش صحیح باشه اونها همه رعایت بشه حالا اینجا قرآن مجید عظیم کریم میفرماید چنین اصل طبیعی شفاون لناس تو بحث خودمون که بحثمون استفاده از زدعفونی طبیعی یکی چی بود همونجا؟ سیب رسیده درختی یکی دیگه چی بود؟ محلول آب سرکه طبیعی سوم اصل رقیق شده صبحگاهی هر زمان میتونه بخوره بهترین زمان اصل رقیق شده صبحگاهی با آب آشامیدنی سالم رقیق بشه یا با آب جوش ولم رقیق بشه یا با شیر تازه گاب جوشیده کمچر وقتی که ولرمه حالا اصل در او رقیق بشه زیرا حرارت بالا یا داقی خاصیت اصل رو کم میکنه حالا مباعث خودمون این اصل رقیق شده خاصیت میکروب کشیش دو برابره و اصل یک ضد باکتریه یک زده قارچه یک زده آمیبه و یک زده ویروسه و هر انسانی در طول عمرش بیش از دیویس ویروس وارد بدنش میشه حسل وقیق شده سیستم دفاعی بدن رو تقویت میکنند در مقابله با این ریز میکروب ها، باکتری ها، قارچ ها و ویروس ها لذا حسل طبیعی، گلچینی از شهد گل ها و اکسیر با ارزشی از ویتامین ها و مواد معدنی از جمله ویتامین سه، ویتامین های گروه B. به یک به 9 به, به دوازدن و همچنین اسید فرمیک یا جوهر سیب که اسید استیک داره که جوهر سرکس یا جوهر لیمو یا پتاسیم یا کلسیم یا آهن یا مس یا منگنز یا فسفر یا منیزیوم همه اینها در اصل هم یافت میشه بحث ضعف حافظه به خاطر کمبود منگنز که میشه انگور سیاه خورد یا میشه کشمش از انگورسیا که مویزه هر صبح ناشتا بسی یک عدد خور یا اینکه اصل رقیق شده در صبح بخوریم کسانی که اصل رقیق شده میخورن و ذریب تمرکزه فکرشون و ذریب تقویت حافظشون بالاست فکر در هم ریخته ندارن برداشت اطلاعات از حافظه به راحتی انجام میشه تو نوشتن مقاله علمی یا تو نوت یا تو هماهنگی کردن مطالب تو دست بندی و کلاسه کردن تحقیقات و پجوه و حتی حتی به عنوان یک پیشگیری طبیعی از نسیان فرامشه دمانز زوال عقل، آلزایمیل زوال عقل پیشنونده به عنوان یک واکسن طبیعی بسیار مورد. توجه قرار گرفت گرچه در داخل و خارج کشور بعضی از تولید کنندگان سرکه سیب مخلوط با عسل رو تولید می کنن. سرکه سیب مخلوط با اصل می و به عنوان یک ماده شاداب کننده یا نیوشیدنی نیروبخش یاد کردن و می پروشن. ولی ما تقراویات شیعه اینها رو جدا جدا میدیم یعنی شیر عسل صبح آب به شام گاهی میتونه مخلوط با اصل باشه وسط روز یا عصرانه محلول رقیق شده آبسرکه آب ما اینجوری میگیم تو بحث جمعه که چه از دکترها و عطاری در داخل خارج کشور میان مخلوط سرکه با اصل درست میکنن. ولی چون اصل رو سه چیز فاسد میکنه یکی نمک یکی گرد و خاک و یکی سرکه ما نمی به حکم سانوی عمل کنیم وقتی که شرایط عادیه و نیازی نیست که به حکم سانوی عمل کنیم بیاییم اول اصل رو فاسد کنیم بعد بیاییم دفع افسد بفاسد کنیم و این کارو ما نمی کنیم. مثل اینکه در افونت های داخلی و چرک های داخلی ما نمیدیم هیت آنتیبیوتیک بدیم که مد شده در داخل کشور و خارج کشور که مثلا آموکسی کلاو میدن سیفالکسین میدن آموکسی سیلین میدن شربت های اسپکترانت میدن انواع آنتی بیوتیکا میدن ما این کارو نمی‌کنیم. ما میگیم وقتی که چه خوشگناه طبیعی آنتیبیوتیک های طبیعی هست نوبت به شیمیایی اینه میرسه مثل آب سیب یا خود سیب مثل اصل یا اصل رقیق شده مثل سرکه سیب مؤمنه یا رقیق شده مثل شلقم اصلجم اللفت که تو روایات اومده خب این یک پنیسلین طبیعه سیب درختی رسیده روی درخت و شیرین این یک آنتی بیوتیک طبیعه وقتی طبیعی است آنتی آنتیبیوتیک طبیعی هست یک ضد باکتری، زده قارچ طبیعی هست، یک ضد ویروس طبیعی هست. رقیقم بشه خاصیت میکروکوشیش دو برابر میشه که اصل طبیعی باشه. ما نیاز نداریم که انواع رو بدیم که کلیه های مردم خراب بشه و پوسیدگی جدار داخل کلیه بیاره و همچنین کار کرده کبد مردم خراب بشه و کبدشون رو به فیبروز و سیروز کبدی بره. ما این عادت زشتی که تو جوامع هست تکرار نمی کنیم نمی بله یه بار شخص اورژانسیه، از انتیبیوتیک های شیمیایی استفاده می کنه با دوزج خاص زیر نظر متخصص بیماری های عفونی یه هفته دو هفته بسه اما یه بار دیگه بحث خود درمانی های قلطه بحث عادات زشته بحث پزشکی عمومیه. این هی مشمش دارو می ده. ما با این عادات زشت مخالفیم. چه داخل کشور باشه، چه خارج کشور. اصل طبیعی مومنا یک انرژی دهنده کاملا طبیعیه. یعنی کالوری و حرارت بدنت رو تأمین میکنه. ماده اصلی اصل طبیعی شهد گل هاست. و شهد گل ها از مقدار زیادی شکر تشکیل شده که مهمترین انرژی دهنده بدن ماست در هر حال شکر طبیعی یعنی ساکاروز باید ابتدا توسط انزیم های دستگاه گوارش انسان به شکل ساده فروکتوز و گلوکوز در بیاد تا بتونه توسط اندام های انسانی به مصرف برسه فرایند تغییر شکل شکر طبیعی که است، به شکر ساده که فروکتوز و گلوکوز در اصل نمود دارد زنبور های اصل پس از جمع آوری شهد گل ها شکر موجود در شهد رو داخل کیسای مخصوصشون که اطراف پاشونه این انزیم های خاص به شکر میوه که شکر فروکتوز و شکر انگور که شکر گلوکوز تبدیل می این عمل باعث تولید شیره با ارزشی به نام اصل طبیعی میشه انرژی موجود در اصل بدون هیچ واسطهی به بدن ما وارد میشه برای اثبات این موضوع کافیه کسی که در خستگی زیاد از کار و روزانه هست درست خوندن، دست دادن، مباحث کردن، تحقیقات، پجوش این برای دانشجو و طلاب عزیز و استادان و علمای عزیز یه بار دیگه شخصی که کار بدنی داره حرف و فنه کارگر، کارمن، مهندس، مهندس فنی، تکنیسیان از یه حرفو در همه موارد که شموردم ها کافیه در مواقع خستگی زیاد تنها یک قاشق مربخوری یا پلوخوری اصل طبیعی رو در آب آشامیدنی ساله یا آبجوش بلم یا شیر تازه کمچر شما هم بزن بخور شاید ساعت نمیشه این خستگی زیاد و مفرت برطرف میشه گویا مؤمنان این خستگی یا احساس دمقی کردن، پکری کردن یا احساس کوفتگی بدن کردن و دست و پا بیرمق بودن به خاطر اینکه شخص هم کم خونی داره، هم فقر کالری و انرژی بدن داره، هم فشار زیر 10 حالا همین شیر اصله بخورا هر سه مورد خوب میشه پس اصل یک ماده اصلی و یک انرژی دهنده اصلی و یک درمان کننده انواع خونیه چه فقر آهن، چه فقر ویتامین به دوازه، چه فقر اسید فولیک تقویت کننده ازالات بدنه، تقویت کننده حافظه است و مانند اینها رفع خستگی روزانه یا رفع خستگی بعد از کار صحیح هم می کند نزا تو روایاتش هم داره زن و شوهری که کار صحیحی دارن از باب اینکه که نه شوهر معتل باشد نه ناموسش معطله باشه. درگیری لفظی درگیری خانوادگی پیش نیاد. سر از دادگاه خانوادن در پس باید هر یک مدتی هر سه روز جایزه هر هفته مستحبه هر چهار ماه قمری یک بار واجبه پس بعد هر یه مدتی این پدر یا زن و شوهر سلام علیک خصوصی کن. در حال جنابت خوردن و آشامیدن چیه؟ مکروه. عوارض داره یکی زفت و حافظه. اما بهترین نوشیدنی و خوراکی بعد از قصل جنابت عسل رقیق شده است. زیرا که قواه این زن و مر سریع تر یکیش بحث کالوریه. یکیش درمان زرف عمومیت رو شده یکی سستی و رخبت اعضایه ولو دست پا هم پیشگیری هم در درمان بیماری دیستروفی یا ضعف ازولانی و بیماری میاستنی گراو یا ضعف ازولات کل بدن هم خورما حرف اول رو میزنه خرمای طبیعی رسیده شیرین حرف اول میزنه یکی دیگه چی؟ همه اصل طبیعیه حرف اول رو میزنه برای کسایی که مشکلات تنفسی دارن از حیث این که مثلا التهاب سینوس دارن یا آبریزش بینی مکررن دارن یا خلط اضافی پشت حلق دارن یا خلط چسبنده در حلق دارن هرچی صرفه میکنن کنده نمیشه یا هنگام خواب یا بیداری تنفس صدادار دارن نفس که میشه ششش صدا میشه با اینکه فعلا سینه پهلو نداره یا بیماری زاتل ریه فعلا نداره یا بیماری زاتل جمب یعنی بیماری پلوریت نداره اما به خاطر خلط اضافی آبریزش اضافی از بینی و یا حساسیت فصلی و یا سینوس التحابی یا سینوس درگیر هم را با عفونت حالا اگر بخوایم همه اینا رو خوب کنیم چه پیشگیری چه درمان یکی چی بود قبلا گفتیم سرکه سیب رقیق شده دو قاشق خوری در لیوان آب دوم چی بود آب سیب آب سیب رسیده شیره سوم چیه عسل رقیق شده چهارم بخور سرکه یه سیب پنجام چیه؟ بخور سپند که تو روایات میگه حرمل سپند اسپند اینجا بخورشان که تو آب بجوشه بخارشو با بینی نفس بکشه آبریزش بینیش قط میشه خونریزی های شدید بینی هم اگه چند قطعه بچکونه کنه قطع میشه این هم راه های درمان مؤمن ها و همچنین مشکلات گلو، نای پشت زبانک و همچنین ششها، سینوسها و ماننده و حتی بعضی کتاب مثل همین کتاب معجزه سرکی سیب نمیستنده مارگوت هلمیس، مترجم نیکو خوگر، صفحه 74 حتی این یه روایت هم میاره میگوید نقل شده است که حضرت محمد صلی الله علیه و علی و وسلم هر روز صبح یک لیوان آب با اصل میخوردند. ایشان فرمودن، یعنی پیغمبر فرمودن، اگر کسی اصل بخورد، هزار دارو وارد معدهش شده و یک میلیون بیماری از او دور میشود. خواستم یک کلمه از باب موعظه به مسلمانان. از شیع مطرح کنند و اون اینه که این فرمایش گهربار و درربال امیر علی علیه السلام در نحجل بلاقم در وصایایی که به مسلمانان می نماید حتما به این فرمایش عمل کن و اون اینه خدا رو در نظر بگیرید تقوای عملی داشته باشید نگذارید امت‌های دیگر که مسلمان نیستند از شما مسلمانان پیشی بگیرن در عمل کردن به قرآن مجید عظیم کریم. حالا یکی چیه؟ بحث اصل درمانیه. ای تو قرآن ما گفته فی شفاون لناس. حالا اونا زحمت می ما اونا جای جای کشورهای مختلف. حتی ایالت کالیفرنیا یا آمریکا که بزرگترین باغهای درخت بادام دارد. و به صورت تن تن هزار کیلو هزار کیلو فراورده های اصل از شهد گل های بادام شیرین دارد و به جهان هم صادر می کند بفهم وقت اندازه یک خانوار نباید تولید عسل داشته باشند. پس اجانب اگر کارهای خوبی دارن نگاه کن از من و شما پیشی گرفتن تو بعضی کارهای خوبشون ما کار به قرتیگری و شیطنت نداریم اونا مرجوه مزمومه غلط زیادیه اما کار خوب هر کسی باید اینجا مسلمون زرنگ باشه نظمشون محکم کاریشون استفاده از میوه‌جات و سبزیجات ارگانیک به صورت طبیعی بدون سموم و آفات شیمیایی و مانند او خب یه کار مثبته. اینا مان مسلمان ها بوده از پس جنگ و اقتشاش ایجاد کردن مسلمان ها یادشون رفته که رجوع به اصولشون کنن به قرآن مجید به نحجال بلاغه به صحیفه سجادیه حالا تو مبایست خودم. این قند های شیمیایی که میخوری مؤمنان قند و شکر و شینی ایجاد قنادی ها این ارزش غذاییش کمه این معده و تو خسته میکنه این ازدیاد افونت روده و دستگاه گارش میاره این کرمه بدنت رو کم میکنه اما خرمای طبیعی رسیده مومن یا شیره خرما یا اصل طبیعی تهیه شده یا رقیق شده او یا شربت هایی که با اصل درست کنی نوش جان کن اگر کسی اعصاب ضعیف باشه، قلبش ضعیف باشه، بنیه بدنش هم ضعیف باشه، سیستم دفاعی بدنش هم در مقابل موجودات ذره ضعیف. همه رو میتونه یه جا خوب کنه. گلاب طبیعی به اضافه عرق بیدمشک بدون اسانس شیمیایی، عرق بیدمشک بدون اسانس شیمیایی به اضافه اثر این ستا رو مخلوط به هم کن نوش جان کن همه اون چهار تا بیماری خوب میشه دیگه لازم میسه آدم داروهای متنوع شیمیایی بخوره با پس لرزای های ناشی از مسمومیت ناشی از داروهای شیمیایی که پروفوسر پیتر کوپر در کتاب مسمومیت ناشی از داروهای شیمیایی مطرح کرد حتی اصل بلادر که اصل سمیه تو کتابش آورده. حتی آسپرین وارفارین که وارفارین داروی مشکنش در اروپای قربیه تو کشورمان یا تو کشور مسلمانان با عنوان یک رقیق کننده قوی خون بخورده این مردم میدم کورکورانه عمل نکنید کپی رایت کرکرانه نکنید دشمن بیدار در بعضی جهات از من و شما جلو زده به خاطر اینکه. که بعضی از من و شما قافلانه جاهلانه عمل میکنیم من همه مسلمانان رو دوست دارم خواستم یه موعظه کنم خوشیاری لازم در انجام کار سعی داشته باشیم از جمله پیشگیری از بیماری ها و یا درمان بیماری ها چه برای خودتون چه برای خانه و خانواده چه برای نسلتون در داخل و خارج کشور همه انسانن همه محترمان همه حقوق انسانی دارن خب حق بهداشت فردی و اجتماعی، حق محیط سالم، حق زیست سالم، حق خوراکی و آشامیدنی سالم. همه باید مد نظر بگیرن. با مخلوط سرکه و آب میتونید قلقلقه کنید یا بخور بدین. میتونید موهاتونو بشورید، میتونه پوستتون رو تمیز کنید، ماساژ بدین، ان آخر بیشتر تازه میاد. خیلی ها سرکه سیب رقیق شده رو سرچشمه حیات انسانی میدونم و ما تو روایات شیعه این کار صحیح مستمر معصوم رو دیدیم تو روایات اهل بیت اسمت و طارف. که شما مثلا مردم ابتدا می کنید ابتدای قضاتون رو به خوردن مسمم ملح ابتدای قضاتون رو با نمک شروع می کنید. ولی ما چارده معصومین ابتدای رو با مختصری سرکه طبیعی شروع میکنیم. مثلا نکه قاشق سرکه طبیعی. میشه نیم الی یک گرم. از زمین تا آسمان فرق دارم. پس خیلی ها سرکه رو با عنوان چشمه آب حیات اکسیر جادوی سلامت داروی کاره. برای دردهای متعدد و مختلف شناختن مسلما همین دیدگاه باعث محبوبیت سرکه سیب طبیعی شده بهترین شکل استفاده آن زمانی ممکن است که شکم انسان خالی باشه و این سرکه رو با دوز کم با مقدار کم محلول در آب یا توی سوپ رقیق یا توی سالاد کاهو گوجه فرنگی خیار روش بریزی. بشقا به سالادته حالا یه قاشق مربو خوری لیوان آبته دو قاشق چای توش میریزی. سپت یه بشقا یه قاشق مربو خوری تا یه قاشق پلو سرکه طبیعی میریزی توی این سپت میخوری. اینی که آن اینجا خوندم. از خارجیان مدرک بانم ار رو هم خوندم. که گفت داروی همه کاره برای دردهای متعدد و مختلف شناخته شده درسته ار رو خوندم. حالا شما ببینید مومن یک داروهایی میاد از قسمت پاکستان افغانستان به دستیسه دشمن. این تفلک ها که بلد نیستن این دارو تولید کنند اینا خارجیه. مثل مثلا دیکلوسین فورتی مثبت تابلز بعد اینه که نگاه میکنی مومن. خود این افغانی ها ایرانی ها و کسایی دیگه میگن حاجقا این قرص هفت درده حاجقا برای هر درد خوبه حاجقا همجور از افغانستان میاره خیال میکنه چیگری هنره میارن و بعضی ها میخورن من دیدم و بعضی ها به هم دیگه میدن یه جاش درد میره زود بیمید. امش خود درمانیه قلبت خودش خود درمانیه غلط مردم فقط که مومنان نگاه میکنی خب تو بلوشدهش نگاه کردم. دیدم مومنان سه تا مسکن قویه. مثلا اینا فرکسی لمال 300 و 25 میلیگرم. و میلی دیکلوفنات 100 دیکلوفنات استودیان 500 میلیگرم. و یکی دیگه هم 100 میلیگرم. این شخص مریض درد و احساس نمیکنه نه اینکه منشأ درد و بیماری از بره دیدی مؤمن از چی شد هم پول میسارفه هم الکی خوش الله منشأ بیماری اصل بیماری هم تو بدنش حالا عوارض این دارو چیه هیچی نگفت درام میگن مسلمون نباید قفلانه عمل کنه به صرف اینکه درد زاری ساکت شد خیال کنه که سالم و حالا افراد دیگه محقق و پجورش از این ورایور دنیا میان حرفای خود اونا که بحث سرکه طبیعی انگوره یا سرکه طبیعی سیبه یا بحث عسل واقعی شده است به تنهایی یا باشیر یا آب بلم یا آب یا آب آشامیدنی سالمه یا بحث سیب که تو روایات است هم قبلی هم تو روایات است برای اینا اصول ما عمل جذب کردن دارن عمل میکنن تخشم میکنن چاپ میکنن بعد بخورد منو شما این الله، الله به هم به قرآن سامد هم به قرآن ناطق رو بیار که کلمات معصومین در زمینه تفاح، در زمینه عسل در زمینه خل که سرکه طبیعیه چرا قرآن سامد و ناطق رو ترک میکنین؟ این فهمهایش رسول الله رو عمل کن مسلمون اگر میخوان در سلامت باشن در رفاه باشن آقابت به خیر بشن خودشون و نسلشون پاک زندگی کنن از آفات مصمون و محفوظ بمانم به فقلین کتاب الله و عطرتی به قرآن مجید محکمات عقص کنن مؤمنا به این محکمات کلمات معصومین امیر المؤمنین حزده را یازده امان محسوم دیگه به فرمایشات گوهربار اینا عقص کنن هنجا فرضیه بافی نکنه یا کرقرانه دنباله داروشی میعی را دا نیفتن این هم یک کلمه بود گفتیم. بعضی ها مومن ها تونتون هی آرخ میزنه. خسته میشه از آرخ های مکرر. حالا اگر دوست داشته باشید جلو آروغ زدنهای علکی ته بگیرید باید چند چیز رو رعایت کن. یکی اینکه غذا رو خوب به دومی که برای غذا خوردن نیم ساعت وقت بگذارید. سومی که با آرامش خاطر و به آرامی غذا بخوری و با لذت غذا بخوری نه غذا بخورید بخوری نجویده یا کمجویده و یا با عجله و یا با فکر مشوش و عصبانیت و استرس غذا بخوری غذا رو هم خوب بجو دوبامی که بهتره که غذا رو در وعده بیشتر بخوری کسی که آرخ زیاد میزنه یا سرده رو پوده میکنه یا حالت تهوع، حالت اوغ زدن و یا استفراغ داره. اینجا باید حجم غذا رو و چربی غذا رو کمتر کنه. و غذاش تند و تیز نباشه. حالا نظیره یک بچه ای که سوء تغذیه داره. وزنش و رشد قدش کم. یا یک مادری که حامله و ماه دوم و سوم حاملگیشه و ویار شدیده برای اینکه که نه مادر نه جنین نه بچه هیچ کدوم آسیب نبیرم اینجا چیکار کام کنیم؟ میگیم مثل شوهرت سه وعده قضا نخور بلکه 6 الان هش وعده بخور ولی به صورت ریز مقضی یا میان وعده قضایی حجم غذا قضا کم باشه ولی مقربی باشه چربی غذا هم کم باشه تندوتیز نباشه هم وزن میگیره هم رشد قدیم میکنه مؤمنا هم تهوع ریفلاکس و اوق زدنش خوب میشه یعنی به اصطلاح تخصصی علوم رفتاری یعنی رفتار با خودت مثبت باشه با خودت خوب تا کن اینم شماره دو شماره سوم از خوردن غذاهای دیر هضم پرهیز کن غذاهایی چون گیاهان خوراکی نان سوخاری سرخ کردنی ها شیرینی‌های های غیر طبیعی و غذاهای شور و ادویه دار اجتناب کسانی که میخوان چاقی مفرد و سردل و تخمه و ترشاشون کم بشه اضافه وزنشون هم کم بشه بدن نرمال بشه میتونن نهار رو از جیره غذایی حذف کنن صبحانه یا سحری حتما بخور مستحب معکده افتاری یا شام زود اول شب حتما بخور و ابکار اینه بهشتیان تو دنیا هم بهشتی قضا بله کسی اضافه وز داره تخمه داره ترشا داره سردل داره تعوا داره اغزاده داره حالا نهار رو از جیه هست میکنی؟ به جاش خضرویات و فواکه میگذاری؟ به جانش سبزیجات سالم، کاهو، میوه میذاری؟ تصالب فهم هر کدوم اینا یک ریزم و قضیه ها با همم هم که مصرف کنیم و ها یک قضایی کامل میشه کم خونید شدید بود، زعف ازوله داشتی؟ توان بدنت کم بود، میتونی یه سیخ کباب با اینا بخوری زرف کرده بودی مثلا یا خیلی قبلنان پرخوری میکردی حالا نمیشه یه مرتبه قط کنیم میتونی نصف نون سنگک یا یه نون سنگک با همین کاهوت بخوری با این یه دونه سیبت بخوری با این یه پرتغال شیرینت با این یه دونه لیمو شیرینت بخوری کسا ها فهم بودیم چی گفتن؟ اما این که ها میگویند صفحه 81 بهتر است شام را از وعده غذایی حذف کنید حرف مفتیه حرف غلطیه چون شام را از جیره غذایی حذف کردن اختلالات در خواب میاره و در طول زمان بی حوصلگی و ضعفهاعصاب میاره چون بیدارخوابی های مکرر و اختلال در خواب ذریب استراب رو در شخص بالا میبره زریب استرس بالا میبره زریب بیحاصلگی بالا میبره زریب هوشیاری شخص در انجام کارهای سعیش کاهش پیدا زریب کم کمش لذا اینجا که نوشته بهتره اشتباه کرده باید بگی بدتر است بدتر است کسی که شام را نخورد لذا گویم. صبحانه صبح زود اول آفتاب یا سحری به موقع سنه افراد فرق میکنه جنسیت افراد فرق میکنه تحرک و کارشون فرق میکنه مقدار نیاز بدنشون فرق میکنه هر کسی به تناسب اینایی که گفتم باید سحری یا سبونه بخوره شام چی جون نظر روایاتشیه شام رو بایستی زود خورد و سبک اگر کسی اضافه وزن داره نرحتی قلبی داره سکته ناقص کرده شام رو سبک بخوره و زود اگر کسی هیچ بیماری نداره فقط شام رو زود بخوره تصال فهمدیم مومن که دو ساعتی تا وقت خوابش فاصله باشه یکی دوباری قرار صدام بره که مثلا دفع سموم کنه مومن به شما ارز که قدم هی میزن مؤمنان تا وقت خوابش اتعشی و اتمش شام میخوره و یکم قدم میزن مؤمنان خودش کمک میکنه به حضم دستگاه گوارش خوابش راحت تر میشه تصایب فهم بودیم؟ اینم مار این مطلب که اینجا یه زده بودیم کسانی که ذات مسانه دارن و دردهای زیرنافی دارن بهتره که سالات گوجه فرنگی همراه با یه غذاخوری قضاخوری سیب دو قاشق غذاخوری روغن زیتون و کمی دارچین میل کنه یه چند بار که بخوره این زعف مسانه خوب میشه زعف مسانه در نگهداری ادرار و تخلیه ادرار یه بار مؤمن هست نه این تکرر ادرار داره به خاطر اینکه عصب مسانه ملتهبه. حالا یا بچه فلج مادرزادی داره یا نه فلج اندامی گرفته بعد از تولاد چجور میشه؟ اگر بچه در تب شدیب پنسیلین بزن فلج اندامی میگیره باید تب بچه قد شد بعد پنسیلین بزن خب حالا اینجا عصب مسانه که از ناف به طرف راسته یک کمپاییت هست اینجا متخصص مغز و عصب نیمی سانتی متر که عصب مسانه رو کوتاه کنه حالا این بچه کنترل ادرار داره تا پدرش از سر کار بیادا این میتونه خوش نگه داره دیگه بچه نیازی به پوشک نداره قبلا هر نیم ساعت یک ساعته تکرار ادرار داشت خب باید مثلا ظرف ادرار زیرش میگذاشتن که مثلا تخلیه ادرار کنه تا بچه رو باید پوشک می‌کردن حالا اینجا نه صبح بابای میخواد بده سر کار بچه نمیبره دستش صبح هم ساعتهای 2 3 بچه میبره دستش بچه کنترل ادرار داره. یه بار دیگه نه بحث شبه فلجی ها یا فلج های اندامی نیست بحث ریزش بی اختیاری ادرار یا بیماری چکمیزک در اینجا پوست سخت چوبی مغز گردو هفت از اینا رو میریزی تو قوری کوچی. تو سه استکان روش آب میریزی یه 20 دقیقه میجوشه حالا سنای ما باشه و یا کسایی که دیابت استرسی دارن یا نرسان قند خون بالا دارن که دچار بیماری چک میزک میشه یا تو زنان که مثلا زایمانهای مکرر داره که زمانش نزدیک یا بارداری های مکرر داره زمانش نزدیک یا سقط جنینهای مکرر داره یا مثلا زن اومد از جای افتادن سقوط کردند یا تصادف کردند یا ضربه محکم خورده بزیر زیر اندام تحتانی و اسفنگترهای اول دوم مال ادرار که بعد از لوله پیشابراه و بعد مستانست اینها له شده ممسوح شده و از گرفتن این پیشابراه از بین رفته یا دائما سلس بول دارن. یا تکرر ادرار دارم یا ریزش بی اختیاری ادرار بیماری چک میزک در هر سه مورد کمک به درمان میکنه اما در مورد سوم که چک میزکه خوب میشه فقط سه بار بخوره سنای ما سه شب هر بار تازه جوشه پوست سخت چوبی روی مغز گردو که قریام محکم میشونه میزن سرش خالی خوب تا از اینا تو قوری کوچیکا 20 دقیقه میجشونن در سه استکان آب در یک استکان از این جشنده می میخوره دفعه یه چیز بریزه دور پس فردا شب از سر نو پس فردا شب از سر نو فقط سه شب بیماری چک میزکش خوب میشه حالا تو بحثای ضعف هم که از محلول آب سرکه گفتم مؤمنا کسانی که مؤمنا رسوب گذاری تو رگ هاشون زیاده کسانی که رسوب گذاری تو کلیه‌ها کالیس‌های کلیه هشلوب کلیه زیاده کسانی که رسوب گذاری در کیسه صفراشون زیاده گجن صفرابی سنگ صفر کسانی که رسوب گذاری تو مسانه زیاده در هر چهار مورد محلول آب سرکه سیب روزی دو لیوان یکی وسط روز دو قشق چایخوری سرکه سیب میزه تو لیوان یکی هم اصرونه دو قشق چایخوری سرکه سیب میزه تو یک لیوان هم میزنه یواش شواش میخورن اگر مؤمن دو روز روزه شرعی بگیره و این کار رو شب انجام بده یعنی یه یک ساعت دو ساعتی که از افتارش گذشت یکی دو ساعتی هم که به سحرش مونده این دو لیوان بخوره از حال دو روز روزه شرعی بگیره اما خارجیان مثل پرفسا سفارین در کتاب روزه یا مثل مارگوت هلمیست در کتاب معجزه سرکه سیب در صفحه هشتاد اینا میان روزه تبی میگن روزه پزشکی میگن بعد میگن دو الاسه بعد این سه بار رو بین روز بخوره تصال فهمدیم؟ ولی ما میگیم روزه شرعی یکی دو ساعت که از افتارت فاصله شد یکی دو ساعت که به سحر مونده حالا این دولیبان آب محلول سرکه رو چکار کنیم؟ ما صف اینم فرق ما در این قسمت با این بندگان خدا تو بحث آب معدنی رقیق شده پس هر آب معدنی از داخل خارج کشور توصیه نمیکنیم. اینکه به صورت مطلق بگه آب معدنی بخور ما قبول نذ. دوم اینکه به صورت مطلق بگه چای کوهی بخور یا چای گیاهی بخور یا چای میوه رقیق شده بخور قبول نداره. باید مزاج شخص طبع شخص نیاز شخص نوع بیماری شخص مشخص بشه تا بگیم چه میوهی بخوره و چه نوع چایی بخوره حرف هم گرفتی چی شد مثلا اگر کسی تسلب این داره فشار خونم داره به این میگیم چای سرخ یا چای قرمز بخور یه هر چایی که بخور و به این شخص میگیم سرکه میوه گریپ فرود یا سرکه میوه دارابی تو سرخ بخور چون خود میوه تو سرخ و دارابی پشارخونه میره پایین سرکه از این میوه بخور گفتین آقا قیداشو پس افراد با هم فرق کن مثلا اگر کسی چربی خون داره رسوب هم داره رگ ها اصلا رسوب تری گلیسیرید خون در رگای کرونر قلب بحث آنزیمای کبلی حالا کسی که چربی خون داره به نوع کلسترول بد یا مثلا آنزیمای کبدیش بالاست باز نمیگیم هر چایی بخور نمیگیم هر میوه یا هر سرکه ای بخور در قید داره میگیم مؤمنان اینجا شما باید چای سبز بخوریم بدون آسانس دوم این که کدو مسما با پوستش کدو خرشتی دو دوبا قرعه حالا کدو خرشتی ها کدو مسما با پوستش یک دونه متوسط بخور ترشی بخوایی بندازین ترشیه کدو مسما با پوستش سالاد بخوایی بخورین سالاد کاهو با کدو مسما که حلقه حلقه کردی اینجوری باید بخوری پس به صورت مطلق ما قبول نداریم یکی دیگه مثلا اگر کسی ضعف اعصاب دارد افسردگی یا سرمخوردگی روانی دارد سردردهای میگرنی و یا سردرد ناشی از قاعدگی دردناک دارد به این نمیگیم چایی بخور به این شخص میگیم چای گل راعی چای کوهی بخور بعد اگر ترشی میخواد بندازه میگیم آقا ترشیه گلهای رعی یا ترشیه گل بهار نارنج اینه بخور پس هر ترشی نمیگیم هر چایی هم نمیگیم حرفون آقا تساوی شد همجون علیکه به امثله و مثال های مختلف پس این که به صورت مطلق خارجی آوردن ما قبول نداریم مؤمنان کسانی که دوست دارن در زمان روزه گرفتن چه روزه پزشکی چه روزه شرعی دهانشون در کل روز بو نگیره از بعد از افتار قبل از سهر و بعد از سحر با محلول آب سرکی سیب یا آب انگور عسکری تو دهانشون بگردونن غرغره کنن بریزن بیرون حتی سرکی سفید اشکال نداره نمیخوایم کسی بخوره فقط مزمزه کنه قرغره کنه تو دهن و حق بگردونه بریزه بیرون اینجا در کل روز تو محیط فامیلی غیر فامیلی ها دهن دیگه بوی بد نمیده چون قارچ ها و باکتری های موزر که روی زبان گایی جمع میشه این بار زبون رو این سفیدک رو از بین میبره افونت ها یا باری که روی لوزه های جانبی یا لوزه سوم یا پشت زبانکه از بین میبره یعنی فضای داخل دهان رو از باکتری های موزر کنه، میکنه توهی میکنه یا به حد اقل میرسنه پس قرغره کردن با مخلوط آب سرکه سیب در طول دوره درمانی روزه گرفتن و یه بد دهان رو از بین میبره و زبان باردار رو پاک سازی و تمیز میکنه کسانی که تب دارن دیگه اینجا نوشته مطلبی کسی که هنگام همیشه هنگام بروز تب باید بررسی دلیل تب بشه و این مهمه زیرا ممکنه پشت این تب یک سرماخوردگی ساده وجود داشته باشه اینجوری بیان کرده و بعد علاوه نسخه مادر بزرگش از نزلای قبلش تو اروپا ورداشته درمان سرماخوردگی قدیم رو گفته. مثلا گفته یه برگه کاغذ بندی رو در اندازه 20 در 20 سانتیمه در سرکه سیب خیز کنه بعد کاغذ فورا که از سرکه سیب به خودش گرفته یه کمی فلفل روش بریزه از همون طرف با نوار پارچی روی سینه ببنده بان پیچی رو بعد از 20 دقیقه باز کنه و سینه رو بشویی در هنگام باز کردن بان مراقب باشید که سرما نخوریم این مثلا مخواسته موسیقی این مسائل بگیر خب اینجا این فرمایشات اینا چند تا اشکال علمی داره. اشکال اول اگر پوست شخص حساسیت و آلرژی داشته باشه به فلفل شما نمیتونید از پماد فلفل قرمز به نام کپکس استفاده کنید پوستش تحریک بیشتر میشه و کهیر میزنه این اشکال علمی تخصصی پوستمون دوم اینکه این کاغذی که استفاده می کنی مشتقات شیمیایی داره، فرآوردای شیمیایی بهش میزنن. فرق میکنه با باند نخی یا کتانی یا پنبه گاز سریل خود این کاغذ غیر بهداشتیه حالا شما به عنوان دور ساندویج می گیری تو ساندویچ فروشا یا اینجا میگیید سرکه بزنه بچسبه؟ سرکه را آلوده کردی پوست شخصا آلوده میشه پس اینجا اشکال علمی داره حاج آقا میخوام خودم زن بچم هیچ وقت تب نکنیم حاشیه ما بر کتاب میخوام خودم زن بچم هیچ وقت تب نکنیم و عفونت داخلی پیدا نکنیم به تبعه او سرمخورده نشیم و هم طولانی نشه سه کار انجام بده خیرش ببین اول عسل رقیق شده صبحگاهی بخور دوم وسط نهار یک پرتقال شیرین وسط شام یک لیمو شیرین بخور بعد از شام تام یک لیوان آب سیب تازه یا یکی دو عدد سیب شیرین رسیده بخور هیچ وقت تب نمی کنی افونت داخلی نمی کنی. هیچ وقتم تبا طولانی نمیشه. اللهم صل علی محمد و علی محمد و عجل خلاجم.